شغال زیرک روزی بود و روزگاری بود. یک شغال بود که در صحرای نزدیک روستایی زندگی میکرد و در میان حیوانات آنجا، این طور معروف بود که این شغال با تجربه و داناست اگرچه شغال دشمن باغهای انگور و خروس و مرخهای خانگی است اما حیوانات وحشی دیگر از شغال نمی ترسیدند و هر وقت کار مهمی پیش می با او مشورت می کردند یکی از کسانی هم که با شغال آشنا بود زاغی بود که در کوه خانه کرده بود و در شکاف سنگی لانه ساخته بود و با شغال میانه گرم بود هر وقت شغال به آنجا می رسید قدری می نشست و از همه چیز و همه جا صحبت می کردند. یک روز که شغال در کوه گردش می کرد به آشیانه زاغ رسید و دید که زاغ دم در نشسته و خیلی غمگین است. بعد از سلام علیک شغال پرسید چطوری می بینم اوقاتت تلخ است مگر اتفاق تازه ای افتاده که ماتم گرفته ای. زاق جواب داد ای رفیق مهربان چه بگویم که دلم خون است مدتی است به یک بلایی گرفتار شدم که دارم از زندگی سیر میشوم یک حیوان بدجنس و و انصاف در این کوه پیدا شده که روزگار مرا سیاه کرده است شغال پرسید کدام حیوان اگر میدانی که زور من میرسد بگو تا پوست از تنش بکنم زاخ گفت نه زور تو به او نمیرسد. رسد دشمن من یک مار خطرناک هست که تازگی ها در تپه پشت آن باغ خانه کرده و هر هرچند وقت یک بار می و یکی از بچه های مرا می خورد زور تو هم به او نمیرسد رسد چون که تو فقط با دردانهایت می توانی جنگ کنی و مار ممکن است لب تو را بگزد شغال پرسید خب زور خودت هم که به مار نمی رسد پس می خواهی چه کار کنی؟ زاق گفت من نمیخوام انتقام خودم را از مار بگیرم بالاخره مرگ یک بار است و شیون هم یک بار اگر من همیشه از ترس جان ساکت بنشینم هیچ وقت از شر آزار و اذیت مار در اما نخواهم بود شغال گفت تا که توانی با مار بجنگی و اگر مار دور گردنت بپیچد تو را خفه خواهد کرد زاق گفت من که اینقدر ساده لوح نیستم بروم به مار بگویم ای مار صبر کن و تکان نخور من میخواهم تو را بکشم بلکه فکر کردم یک روز که مار خوابیده ناگهان بر سر او حمله کنم و با نوک خود ديدهش را درآورم و پرواز کنم تا دیگر نتواند خانه ای مرا پیدا کند و فرزندان و نور چشمان مرا آزار برساند به عقیدی تو این فکر فکر خوبی نیست اگر مار بیدار شود و تو را ببیند بعد از آن بیشتر با تو دشمن خواهد شد پیران قدیم گفتند با دشمن طوری باید روبرو شد که خطر جان در میان نباشد زاغ پرسید خب پس راه چاره چیست شغال گفت: راهش این است که کسی را به جنگ مار بفرستیم که زورش به مار برسد. همانطور که آدمها برای مبارزه با گرگ سگ را همراه گله میفرستند و دو دشمن را به جان هم می تا خودشان در این میان سالم بمانند. زاق گفت: از حیوانات چه کسی زورش به مار میرسد فقط گربه است که چون پنجه های تیز دارد میتواند یک دستش را روی بینی بیموی خود بگذارد و با دست دیگرش مار را بکشد اما حالا که هیچ گربه ای با ما رفیق نیست تا از او کمک بگیریم بسیار خب گربه نباشد کسی دیگر باشد تازه گربه هم که بود نمیشد که با خواهش و التماس او را به جنگ فرستاد باید فکر اساسی کرد زاغ گفت: خب پس به نظر تو کدام یک از حیوانات را باید به جنگ مار فرستاد؟ شغال گفت: لازم نیست از حیوانات باشد. بهتر از همه آدم ها هستند که میتوانند مار را نابود کنند. زاغ گفت: آدمها؟ آدمها که دلشان به حال بچه زاغ نسوخته است که بیایند و مار را بکشند؟ شغال گفت: لازم نیست که آدم‌ها دلشان به حال بچه زاغ بسوزد چون مار دشمن مشترک زاغ ها و آدم همین اندازه که آدم‌ها جای خانه مار را بدانند می آیند و او را نابود می کنند زاغ گفت آخر آدم از کجا می که ماری روی آن تپه پشت باغ است و بچه های مرا می خورد؟ شغال جواب داد خیلی عجله می کنی و گوش نمی دهی زیاد شلوغ نکن و گوش بده ببین چه می گویم نمیرسد. زاغ گفت خب ما که زبان آدم ها را نمی دانیم شغال گفت وقتی ما زبان آنها را نمی دانیم، نباید دست روی دست بگذاریم فقط باید درست فکر کرد و راه آن را پیدا کرد و این عقلی که توی کله ما اند برای همین گذاشتند که آن را به کار بیندازیم و علاج دردهای ما را پیدا کنیم زاغ گفت خب شغال گفت بهتر از همه کارها این است که پرواز کنی و بروی توی آبادی و هر جا که چیز سبک وزن گران قیمتی از مال آدمها دیدی آن را به نیش بگیری و طوری پرواز کنی که آن را ببینند. آن وقت آنها دنبال تو راه میفتند که آن را پس بگیرند و تو باید آن چیز را که بلند کرده ای بیاوری روی تپه و هر جا که مار را دیدی بیاندازی روی مار. بقیه کارها خودش درست می شود. زاغ خوشحال شد و گفت: آفرین فکر خوبی کردی! بعد پرواز کرد و آمد توی آبادی در خانه که جمعی زنان نشسته بودند. دید از همه چیز بهتر یک پیراهن زنانه است که هم سبک است و هم مردم آن را میبینند. زود پیراهن را که روی بند بود به نوچ گرفت و پرید و چند دور بالای سر آنها پرواز کرد. زنها که هرگز ندیده بودند یک مرق وحشی پیراهنی را ببرد هریاهو راه انداختند و مردها را خبر کردند. گروهی دنبال زاغ راه افتادند تا ببینند کجا خسته می شود و پیراهن را می اندازد زاغ هم آمد و آمد تا روی تپهی پشت باغ انگور و همین که به مار رسید پیراهن را روی مار انداخت مار هم به گمان اینکه این پیراهن آدم است و قصد جان او را کرده دوید زیر دامن پیراهن که او را بگزد و مردم هم رسیدند و اول مار را کشتند بعد هم پیراهنشان را برداشتند و رفتند زاغ هم با خیال راحت آمد به خانه‌اش و از شغال تشکر کرد و گفت آفرین آفرین بی خود نیست که تو را شغال زیرک نام گذاشتند